نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم اقسام و تشبیه درس دوم اقسام تشبیه ما در درس قبلی ارکان تشبیه رو خوندیم اینجا چی رو میخونیم اقسام تشبیه رو الامثله با مثال پیش میره انا کلمائی ان رضیتو صفا و اذا ما سختتو لهیبا میگه من بمانند آب هستم در صفا زمانی که حالم خوبه و راضی هستم اما زمانی که اصابانی باشم مثل آتش شولور میشم مثل چه هستم؟ پس من به مانند ما هم اگر راضی باشم در صفا اینجا صفا وجه شبهه ماهه انا مشبه کاف حرف تشبیه الما مشبه به صفا اندگه چیه؟ باشه به این چت چط... اینو چه نوع تشبیه میگن با توجه به این که ما در این درس انواع تشبیه رو میخوریم برعکس میخونیم نمیشه استاد نه مشکلی نیست شما دقت کنید من اینجا توضیح میدم بعد قاعده توضیح دم میدم بهتره آره با دوباره با, دوباره با دوباره مشکل نیست قوا... مشکلی نیست مشکل نیست بیاید قواعد قواعد یک و دو رو در درس خوندیم الان سه و چهار و پنج به شیش و تو این درس میخونیم ما امروز یک دو سه پنج نوع تشبیحو میخونیم تشبیه مرسل ما ذکرت فیهی التشبیح المرسل و قاعده سوم کتاب ما ذکرت فیهی الاداتو تشبیح مرسلان است که در آن تشبیح عدات ذکر شده باشه مثل همین؟ بصال اولش که ادات درش چی بود که كأ حرف کاف بود پس این تشبیه تشبیه چی بود مرسل بود التشبيه المؤكد ما منه الاداته تشبیه مؤكد آنی هست که ادات ازش چی شده باشه حذف شده باشه در امثله میاره مثالشو 5 التشبيه المجمل تشبيه مجمل ما حذف منه وجه الشبه تشبيه مجمل آن است که حس شده باشه از آن وجه شبه شبه 6 التشبيه المفصل ما ذکر فيه وجه الشبه تشبیه مفصل آن است که وجه شبه درشته شده باشه ذکر شده باشه پس اگر ادات ذکر باشه مرسال حس باشه موکد وجه شبه اگر ذکر باشه مفصل حس باشه مجمل اگر هر دوتا تا بشن بهش میگن بلیغ نوع هفتم قاعده هفتم دقت بفرمایید التشبيه البليغ ما حذفت منه الاداته وجه الشبه تشبیه بلیغ آن است که حس شده, شده باشد از آن عدات و وجه شبه هر دوتا که ازش اگر من بگم انت نور انت نور اگر من بگم انت نورون انت مثلا انت قمرون اگر من بگم انت کل قمری فی الضیاء این چیز دیگه ولی اگر بگم انت قمرون اینجا ما هم وجه شبه رو حصف کردیم و هم عدات این میشه تشبیحه بلیخ حالا بیایید روی الامثله تشبیه اول که خوندیم ببینید درش ادات ذکر بود پس بهش میگن چی مرسل درش واجه شبه ذکر بود بهش میگن مفصل پس هم مرسله و هم بهش میگن مرسل و مفصل دور دقت کنید سرنا فی لیل بهیمن رفتیم در شبی تاریک که البحر ظلاما و ارهابا گویا که این شب تاریک بمانند دریا بود ال hazards تاریکی و ترسناکی حالا در این مثال اگر دقت بفرمایید وجه شبه ذکر شده که که کانه پس بیش میگن چی مفصل وجه شبه هم ذکر شده عداد ذکر شده که انه هست وجه شبه هم ذکر شده تاریکی هست پس این هم میشه مرسل و مفصل دیم در چی نبید جان؟ موقعات موقعات اونیه که وجه شبهش هش... چی؟ آ... عدادش حصل بشه اینجا عداد در هر دوتا ذکر شده دیگه انا کلمائی کاف عداده در بعدی که یک ذکر شده نه مرسله اید این مرسله و مفصله مرسله و بیا روی سفم قال ابن رومی فی تأثیر غنائی مغنن ابن رومی در تاثیر غ... غنائی یک غناخان گفته کانا لذت صوتي و دبيبها سرت تمشى في مفاصل نعاسی میگه گویا که لذت صدایش و دبیبان حرکتش نفوذش در بدن بمانند است که در مفصلهای شخص خواب میره فرو میره چطور چرت در مفاصل شخص خواب میره میگه این لذت صدایش همین جوری در وجود آدمی چ میره فرو میره تأثیر داره خب <متحدث> این تشمیح ولی چیه مجمله چرا خود نه واجه شبهش کجای مفصلونی که واجه شبه درش ذکر باشه کجای اینجا واجه شبه ذکر نشده برادر من این مجمله مؤکد نیست تو عزیز من مجمله مجمل مجمل اونه که واجه شبه درش ذکر نشده باش متوجه شدید؟ بله مؤكده موجم... مؤكد جلوتر میاد الجواد في السرعة برق خاطف شو نه ها شار. وقال وقال ابن المعتز وكان الشمس المنيرة دينار جلته جلدو حدائب ضرابي. میگه گویا که خورشید نورانی بمانند دینار هست که سیقل داده اون رو آهن آهنگر یا اونی که بهش میگن چی؟ زرگر بله <تصفح> <تصفح <كا> وکا ان شمس المنیرت دینارون جلتو حدائدو درابی و گویا که شمس درخ خورشیده درخشان است که سیقل داده است آن را آهنه همون آره آره سیقلش داده است اون را جلایش داده است آن را آهن یا همون چکوشه آهنگر اونی که کارش با زرگر. بله زرگره کار دینا رو انجام میده اونی که پول درست میکنه نه میدونم بهش چی میگن تو فارسی آهنگر میگند زرگر میگند خب بیایید اینجا در شماره چار مجمله یا مفصل مجمله شماره چار هم چیه؟ مجمل مثل شماره سه چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هم واجه شبه ذکر نشده اما یک و دو واجه شبه ذکر بود مفصل بودند اونا چی بودند؟ این دوتا مجمل بودند اما الجواد و فی برق برقن خاطفن شماره پنج شماره پنج آقا این مؤکده چرا؟ چون وجهش عدات تشبیه درش ذکر شما در شماره پنج عدات تشبیه میبینید نه جواب نه نیست عدات تشبیه نیست نیست باره عداتی درش ذکر پس این دی بارد. عصب در سرعت مانند برق چه هست جهنده برق سری چه شد جهنده سری رباینده بارد. آره شیش انت نجم في رفعه وضياء تو ستاره هستی در بلندی و در نور تجلی که علیول و شرق و غرب نگاه میکنن تو را چشمه ها از شرق و غرب یعنی از بس که بلند و بالا و روشن هستی از هر سمت دیده میشی خب این شماره 6 چه نوع تشبیهی هست جوت شعری عمیق و شدید کجا؟ اینجا. مشبه نه. شن مهم نیست. فقط ادات تو این درس ادات رو در نظر بگیر به اضافه وجه شبه و در این ادات ذکر نشده های. انت ناجن اگر گفته بود انت کنج مین کاف آورده بود اینو میگه ادات باشه ذکر مشبه ذکر مشبه کی ب... مشبه تو این درس اصلا نخوندیم که باد هست بشه عزیزم تو کجا دنیایی گفته ادات و وجه شبه فقط اگر ادات حسب بشه اسم دیگه ای میگیره وجه شبه اسم دیگه ای آیت داریم شماره 6 که انت نجمن فی رفعت و ضیائن تجتلی شرقا وغربا و غربا. اینجا ما تشبیه و نداریم پس این مؤکده عزیز دل من متوجه شدی؟ بله پس این هم شد مؤکد اما بریم در شماره هفت و قال المتنبی و قد اعتزم صیف و دولتی سفرن میگه در حالی که سیف و دوله عزم سفر کرده بود متنبی گفت عین از معت ایوها دل همامو به کجا قصد کرده ای؟ ای شیر ای مرد بزرگ ابن همام حنفی نشیری دید؟ این همام همون همام اسمش شیر بزرگ مرد به کجا قصد کرده ای, ای؟ مرد بزرگ نحنو نبتو الربا و الغمام ما گیاهان دامنه کوهیم و تو چه هستی؟ عبر هستی یعنی ما نیاز به تو داریم یعنی گیاهان, گیاهان نیاز به چه دارند؟ بله نیاز به باران دارند پس همام معانی زیادی داره به معنی بزرگ به معنی پادشاه به معنی سرور به معنی سید به معنی رئیس به کجا قصد کرده ای میخوایی کجا بروی ای بزرگ مرد ما گیاهان بالای تپهیم و تو عبر خوب یا باران در این مثال ما مشبه و فقط مشبهون به داریم نحن نبوتو روبا مثلا عنوان مثال آقا یه لحظه نحن نبوتو روبا درش؟ ما چی داریم؟ مشبه داریم و مشبه و دی. به. دی. اما نه عداد اینجا داریم و نه پس این چی تشبیحیه؟ بلیغ. بلیغ رسا اینو میگن تشبیحه؟ بلیغ در بیت هفتون مثال هفتم تشبیح تشبیحه چیه؟ بلیغه وقال المرقش النشرو شرمسكن والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم ميقبوية خوش بمعنان ده بو بوية مسك هست وچهرها معنان دينار دي و اطراف الکوف عنو و اطراف کف دست که همون به مانند گل لاله هستن این بیت هم همش فرز تشمیح های چه هست بلیغه باقی که میگه انش رو کن فقط مشبه هون به ذکر شده الهجوه و دنانی رون همچنین فقط مشبه هون به ذکر شده الاطراف الکوفه انمون فقط مشبه و مشبه به فقط ذکر شده پس این هم شماره 8 بود تشبیه بلیغ بود پس تکرار میکنم قواعدو اگر ادات ذکر بود مرسل ذکر نبود ادات مؤكد اگر واجه شبه ذکر بود مفصل اگر ذکر نبود مجمل اگر هم ادات حذف شده بود و هم واجه شبه بلیغ هلا نموذج شو بياريد بعد از قال المتنبي في مدح كافور اذا نلت منك الودة فالمال هينون وكل الذي فوق التراب تراب زمانك كالرزايت تربداس بياران فس مال آسان است و هران چك بالاية الزمين است بالاية خاك است خاك است فس كل الذي فوق التراب تراب اینجا فقط مشبه و مشبه البه داری دیگه وجه شبه و ادات درش نداریم وصف اعرابی رجلا فقط یک عربی بادینی شخصی رو وصف کرد گفت که انه النهار الظاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر گویا که اون شخص خورشیده، روز روشن و ماه تابنده است که بر هیچ نگاه کننده‌ای پوشیده نیست إنهو مشبه نهار مشبه به يو كأنه القمر الباهر فس ما فقط يجب مشبهه تداري ببليت دي قتة وشتباشت بال در اون اوليك خود دين اجاد ولی بلیغ بود چون هم عادت هست شده بود هم چی اما در این دومی که انهو که انه ذکر شده اینجا عادت ذکر شده, زکر شده. زکر شده. این چی میشه بله نیست شبه هست و اینجا استاد نه ببین اگر عادت ذکر شده باشه بهش میگن مرسل نه اون اگر ولی شبه ذکر نشده باشه اگر ذکر نشده باشه مجمل اینجا هم مرسل هم مجمله دیگه هم مرسل هم مرسل هم اون است که همش ذکر باشه نه وقتی شبا هم ذکر باشه کیت کی به کی اینجوری گفته اول اول قاعده ها رو دقت کو مرسل اونه که اداد درش ذکر شده باشه دقت این کلا دقت کن مرسل اونه که کی درش ذکر شده, بله. شده باشه در این اداد ذکر شده باشه. کائنه نهار ظاهر کائنه ادات پس خب. این شو چی مصح. مرسل این ادات اگر ذکر شده بود میشد چی مؤکد بله خب این از جهت ادات دقت کن اضافه باشه استاد دقت کن جلوتر میریم عادی عادی شین دقت کن ما ببین در یک تشبیه میتونه ادات ذکر شده باشه میتونه واژه شبح هم ذکر شده باشه خب اینجا هم مرسل و هم مفصل امورسله و هم چه؟ مفصل اگر فقط عداد ذکر بود ولی واجه شبه ذکر نبود اول الموقع بشتی میگن؟ مرسل بشت میگن؟ عداد ذکر شده ولی واجه شبه ذکر نشده مفصل بشت بگن مجمل واجه شبه ذکر شد بشت بگن مفصل اگر فقط اگر قضا دی چه پیش میاد؟ ها دیگه اینجا هیچی پیش نمیاد. اصلاً از بلد میره، چه عرض بلد میره؟ 4 حالت داره آقا. میتونه عزت با میتونه واجبه ذکر بشه. میتونه عادات ذکر بشه به اضافه اون دو تا رکن دیگر. میتونه یکی از این دو تا رکن‌ها ذکر بشه به اضافه اون دو رکن دیگر. میتونه هر دو تا ذکر شده باشه. زمانی که هر دو تا ذکر شده باشه، بهش هم میگن هم مرسل و هم بهش میگن بو فسد متواجه شدی الان خواجه شیده میره استادنه که قایده مثلا مؤکده است تشبیه المؤکد خوب عداد اگر عداد ذکر بشه بهش میگن مرسال. اگر حس بشه مؤکد خود دروف ظرفه خوب اینجا فقط این عداد حذف کرد حسنه نشده که انه نهار و ظاهر که انه ذکر شده نه این قایده ها شباید نکن خوبه خیلی بریم در یک ك... چیز ذکر میش خب که انه النهار نهارو الظاهرو در که انه النهار نهار که انه چه هست؟ بابا بله این طور نمیتونه میگیم که عدات ذیکر باشه و وجه شبه ذیکر نباشه او را میگن مجمل برای مزاند. اگر که هر دو تا ذیکر دیگه اون بلیغ میشه بابا اگر هر دو تا ذیکر نباشید کاملا درسته بلیغه ولی اگر هر دو تا ذیکر بود چی؟ و موصل می شوه کی کیبت گفته اول قاعده دیگه قاعده این اینجوری نبود با... کجا گفته قاعده این این مثلا سبب کجا گفته؟ از تشبیل موصل موزوکی را فعل ادا تو خب ورسلونه که فقط ادا ذکر شده او ادا دیگه با واطیری که در موجمل وقتی که نگا نه سوال سا... سع... هم یه سوال ورسل کدومه شما بگید و الان من میفهمونم ورسل کدومه چیزی که مثلا ادا هم هر چیزی که باشه ادا ادا یه چیزو فقط میگن <تصفيق> عزیز من شما دقت کن من الان متوجه بکنم ببین یکی رو میگن عداد یکی رو میگن وجه شبه همه میدونم. چیز رو نمیگن عداد عداد فقط اون که انه هست یا که هست ولی ولی وجه شبه یه چیز کاملا از این جداه حالا اگر اگر عداد ذکر شده بود بهشتی میگن مرسل. اگر ذکر نشده بود اگر ذکر نشده بود ها عداد محکد محکدش میگم احسن اینجا ما در چیزی شبه کاری نداره امجا چیزی امجا کار نداری او اینجا اینه مشخصه کی ذکر دیگه درست یه لحظه دقت کن حالا اگر چنانچه اعداد و وجه شبه ذکر شده بودند اینجا چی میگید هم مرسل هم اگر ذکر شده باشند نه اولویت چیزی دیگه من مثلا از این قاعده بعدیش قاعده اولگی مشخص میشه که در اولگی فقط یعنی حدافی مو اداب تای با وجه شبه حتمی ذکر ها. اگر که مثلا در قاعده اولگی عدد ذکر نباشه و ولی شبه هم ذکر نباشد کولا اون معنی اخیر میرمید نه نه اینو باید از دو زاویه نگاه بکنی ببین اینو باید از دو جهت نگاه بکنی اول نگاشت بکن ببین عدد داره یا نداره از این زاویه اگر داشت مرسل نداشت موکد بعد یه نگاه دیگهش بیانداست آیا وجه شبه داره یا نداره اگر داشت بهش بگو مفصل اگر نداشت مجمل الان با تواجه شدی؟ پس این میتونه میتونه مرسل و مجمل باشه میتونه مرسل و مفصل باشه با تواجه شدی الان؟ بای مرسل اینجوری کاملا هیچ تضادی با پیش نمیاد هر دوتا توی یکی باشن اگر مثلا در یکی عداد ذکر باشه واجی شبه ذکر نباشه اینا میگن چی دیگه استاد مجمل درسه مرسل و مجمل, مجمل نه ببین عداد ذکر باشه داد ذکر باشه اول بگو مرسل واجی شبه ذکر نباشه خب شما ببین مجمل میشه عزیز من یک دقیقه شما باید دو نگاه اینا رو داشته باشید یکی این که آیا وجه نه نا تکالیف یک بار نگاه کن آیا عداد داره یا نه اگر داشت بگو مرسل اگر نداشت بگو چی محکد. یه نگاه برای وجه شبهش بکن. دیگه ما اینجا دو چیز داریم بله بله. فقط عداد نیست هم عداده و هم وجه شبهه برای وجه شبهش نگاه کن اگر وجه شبه داشت بگو مفصل اگر نداشت دیگه چی بگو؟ مطمل ما همین نموزج ها نمونه‌هایی که آورده در اولی موقعی که نگاه میکنیم می‌بینیم تشبیه ما بلیغه كل الذي فوق التراب ترابه فقط مشبه مشابهه مشبه البهداري فس شد بلیم هم عداد حسفه وهم هم واجه شبه ولی در دوفمی نه در دوفمی عداد ذكره اما واجه شبه ذكر نیست پس از اون جهت که واجه شبه اداد ذكره بش ميگیم مرسل و از اون جهت که واجه شبه ذكر نیست بش ميگیم بجمال متوجه شده؟ باله بریم بعدی زورنا را الفردوس في الجمال و زیارت کردی باقی را که گویا بحشت بود در زیبایی ای. اینجا اگر دقت داشته باشید تشبيه کرده است باق رو به فردوس پس حدیقه میشه مشبه که انا عداد فردوس میشه نه ها رو بگیریم مشبه که به حدیقه برمیگرده که انا ها الفردوس که انا عداد تشمیح ها مشبه که به حدیقتن برمیگرده الفردوس میشه مشبه به چون اونو تشمیح به فردوس کرده دیگه نه واجه شبه چیه؟ جماله پس این تشمیح میشه چی؟ هم مفصل و هم مفصل پس هم برسل به هم آقا تو تیریق چی قاعده قبول نداری مثلا تو اینجا همشون پایان کرده است استاد خب اگر هن... اگر مثلا یک چیزی ما استاد یعنی که به قاعده بذارم. حرف بزنم و موقع مسائل متوجیه تشبیه اون هسته که تشبیه موسی اون هسته که واجی شبز ذکر باشه ای ادا ذکر باشه خب صبر کن اول بذار یک دفعه توضیح بدم ذکر باشه جما از واجی شبزی که نمیدونیم برای خود به خود ذکره چرا؟ و بر خاطر در قاعده بعدی خودش ذکر میکنه اسم چه دیگه میگیره باشه استاد جان بعد در دومش میگه که مؤکد اون هسته که مثلا اعداد حضب شده باشه کو خب وقتی که اعداد حضب شده باشه اون وجه شبه خود بخود ذکره دیگه استاد دروسه. برای چی؟ بخواد تیری در تعریف بعدی ایرا بیان میکنن اگر که ذکر نباشه این خلافیم باشه اسمش دیگه میشه سه مستاجون بگم مجمل اون استایی که وجه شبه ذکر باشه پس عداد دیگه ذکره چرا ذکره؟ بخواد خاطر که اگر ذکر نباشه بلیغ میشه استاد گو با... یعنی زمان زبان بلیغ میشه زبان هر دو هر دو تا حذف شدی بس اگر هر دو تا ذکر شده باشن مرسل مشه دیگه کی بیت این از, از کجا سب کل سب کن اینو از کجا میاری بعد بعدی قاعده کجا قاعده بعدی وقتی که میگه که مثلا ادات حذف شیده باشه پس او را میگن چی مؤکد دیگه ادات اگر حذف شده باشه مؤکدش میگه درست ولی در این مثال ما هم ادات رو داریم هم وجه شبه هو. خو نه در مثال چند خوددار. سب. یا یه چیزی دیگه استاد. چیزی مرا متوجه شدی؟ اگر نگاه شاید بود. مثلا ما در میگیم هوشی فدمن نل اداد. خو. الاداد. اگر اداد حذف بود. درسته. خوب ایرامو میگیم واقعات. چرا رو میگیم وجه شبه هزفشیده؟ و خودیر اگر هزفشیم معنی بالی خمیدیم. ما از این جمله چی؟ از این زمان. دقت کن. ببین در یک تشبیه میتونه هم ادات ذکر شده باشه. هم واجه شبه این مرسل میشه فقط سور نه طبق قاعده حرف بزار, بزار. قاعده بات. اینجوری نگفته داری تو اینجوری میگی نه نه نه من میگم با قاعده رو من دارد بیت عربی روان میخونم ببین اتشبیح المرسلو ماذکرت فيه الاداتو اتشبیح المؤکدو ما فتمن حل اداتو عداد. این شد بحث روی مرسل و مؤکد بحث اداتش خب. خلابیه بیار واش وجه التشبیه المجمل ما خلفت منه وجه شبه خب وجه شبه اینجا بحث ادات اصلا بحث ادات نیست اصلا بحث ادات نیست نه نه ادات ذکر استاد چرا ذکر اگر که ذکر نباشه استاد این اسمش بلیغ میشاوید خب درست عزیزم من پس ما روی ادات کاری نداریم برای ادات خود به خود زکر. بابا تو دقت یه دفعه یه دقت چرا حواست کجاست عزیز من صد درصد اشتباهی دقت نمی کنیدم شما اینا یه جوری فهمیدی تسلیم هم نمیش. ببینید اگر آ ما اینو با دو نگاه تمام کتب بلاغه میگه به غیر از این تمام کتابا هیچ کتابی نداریم که این جوری که شما داریم میگی بگید این اسمو زیر سوال نمیرم استاد اصلا زیر سوال نمیرید مرسل مفصل موصل این ایجمال اینو مثلا که شما تو کدوم کتاب بلاغه خوندی تو کدوم کتاب که ای... که یک تشویح نمیتونه مرسل و مفصل با هم بشه کجا خودی؟ برای اسم اینجا میگه مفصل عزیز وجه شبه زیکر باشم خب این فقط داره وجه شبه رو داره میگه خب اگر که عداد که هم زیکر باشم پس مرسل میشه وقی کردن چی معنی خب اگر اومد شما اصلا کاری به وجه شبهش نداریم به عداتش یک تشبیه همین تشبیه اصلا به لحظه اینجوری میفهمونیمش در همین تشبیهی که الان خوندیم زورنا حدیقتن که انه الفردوس اصلا کاری به عدات نداشته باشه اللحاظه اللحاظه وجه شبه آیا این آقا مفصله یا بجمل بگو فکر که اون وادج شابش ذکر باشه، خب مفصل بهش میگن اینجا اینجا ذکر شده جماله ا این یا این مفصل یا مجمله اگر این قاعده ش بگیریم قاعده شباشه. من نه قاعده کتاب داره میگه. میگه کتاب داره میگه کتاب خود کتاب داره میگه تشبیه مرسلان است که در آن ادات ذکر بشود موکد آن است که ادات حذف میشه این از زاویه چشه این از جهت اداتشه ادامه هنوز بحث داره بگه مجمل آن است که وجه شبه حصف بشه و مفصل آن است که وجه شبه ذکر بشه اما اگر هر دوتا حصودن میشه بلیغ هر دوتا حصف بشه در این مثال بله بگیری بله که ولی اما ای احسن ایشون خوب فهمیده ببین زمانی حرف شما درست می بود که با هم تضاد داشتن مثلا بلیغ بودن با مجمل بودن در تضاده بلیغ بودن با مرسل بودن در تضاده خوب اما بلیغ بودن با چی ب... بلیغ بودن با مفصل بودن در تضاده با مرسل بودن در تضاد ان با با بودن و با مجبل بودن در تضاد خب در سلسلتی نیست ایجا دیگه یک چی میشه یعنی بلاغت از بس شواد برای یک یعنی مثال هم, هم میتونیم هم برای مرسل بیاریم هم برای مجمد هیچ مشکلی نیست چی اشکالی یعنی؟ داره چی اشکالی داره یا یک مثال برای دو تذکر کنیم هیچ مشکلی نداره مرسل با مؤکد چیک جمع نمیشه چون متضادند عزیز من مرسل و مفصل مرسل و مجمل با هم دیگه جمع میشن مؤکد و مفصل با هم دیگه جمع میشن فقط بلیغ باشون جمع نمیشه با همه فقط بل با در بحث بلیغ تضاد بیاد چون بلیغونه بلیغ که چه هم باید واژه و... و... و... و... ادات درش حسب بشه من از ناحیه اسمش میگم از ناحیه اسم هیچ مشکلی نیست خود هر کتاب عزیز دلایمان هر کتابی رو بری باز کتاب بلاغی رو هر کتابی رو إيه مشكل فيش بيات بس بريم روي مثال بعد با... بعدي العالم صراج أمته في الهداية وتبديد الظلام، العالم صراج أمته في الهداية وتبديد الظلام، علم شراغ أمته شاس درهدايات ودر در أزبيد موردنها، طريقها، إن مثال شده در این مثال عادت حذف شده پس بهش میگن چی؟ اللحظه اداتی بهش میگن موکد حالا بریم اللحظه چی بررسیش کنیم؟ وجه شبه وجه شبه اللحظه چی ذکرش میکنیم؟ وجه شبه اللحظه وجه شبه میبریم که وجه شبهش ذکر شده. بله پس این میشه از جهتی میشه مؤکد و اللحاظه وجه شبه میشه مفصل اللحاظه پس از اینو دو نگاه ما بیاندازیم بله وجه اللحاظه عداد میشه مؤکد و اللحاظه وجه شبه میشه چه؟ مفصل ایمین وجه شبه هم سیراج امتیه ایسا بیم وجه شبه هش هدایته بله سیراج اومتی سراج عمتی نمیشه وسط نه ببین نه سراج میشه مشبّهٌ به العالِم در اصل کس راجی هست ها؟ کاف حذف شده شد بعد شد چی؟ مؤکد عالم به مانند چراغ هست در چه چی چیزی؟ اینا با هم شریکند در هدایت چی؟ چی؟ چراغ انسان رو در تاریکی هدایت میکنه. در تاریخ‌های های محسوس و عالم در تاریخ‌های های معنوی گبراهی ها یعنی از بین بردن تاریخ‌ها ها بله پس این درس حل کنید درسه بعدی خوب ترکیب اگر بکنید خیلی تو